قدرت معنوی اندکی پس از ساعتی یک صبح چراغ را خاموش کردم که بخوابم اما اما آنجا غیر ممکنی یافتم. زیرا به نظر می آمد از جایی در اطراف اتاق در کاسه سرم درون قلبم صدای روازارتارز با من حرف میزد. اما نمی توانستم به فهمم کجاست بالاخره برخواستم و چراغ را روشن کردم تا ساعت را ببینم یک و و دقیقه بامداد بود او را دیدم که روی صندلی نشسته و لبخند میزد پار آخر من کی و چگونه باید استراحت کنم ربازار سارد هیچ وقت وقتی تو را به خدمت خطاب میکنند استراحت نداری؟ به من نگاه کن آیا من هرگز فرصتی برای استراحت پیدا میکنم؟ در حالی که همه جهان به پایم افتاده و از من درخواستی دارد پا درست است، اما من نه یک قیدیس هم من نه قدرت را که تو داری دارم ربازارتار آه همینجاست که اشتباه میکنی هر انسانی قدرت را دارد فقط باید آن را تشخیص دهد و بگذارد استاد حق از قدرت حق در او استفاده کند اجازه بده به بحث درباره بعضی مطالب پردازم این قدرت کیهانی که درون توست چیست آیا میدانی و میتوانی فهم کنی که آن چه معنایی دارد من تردید دارم که یک انسان معمولی عملا بداند قدرت معنوی از چه تشکیل شده و چگونه در این طبقه کار می‌کند به گدار این را به تو بگویم معلمین حقیقت در مورد قدرت خدایی درون چیزهای زیادی به ما میآموزند این قدرت به اسامی و نامهای گوناگونی خطاب شده است مثل خدا قدرت کیهانی قدرت مسیحا و برخی دیگر آنها همگی بر سر وجود این قدرت شگفتانگیز و جادویی موافقت دارند قدرتی که از میان هزاران هزار جهانهای گوناگون جاری است اما میدانند که این قدرت درون هر آدمی تعبیه گشته و او میتواند آن را تحت کنترل خیش درآورد مشروط بر اینکه حضور آن را درک کند یا از آن آگاه باشد. ابتدا این را بگویم که طبیعت این قدرت از هر آنچه تابحال شنیده ای متفاوت است. بزرگترین قدرت در تمامی خلقت خداست. این قدرت به جویباری میماند که از جریان خدا درون تجاری است همانطور که معمولا هر کسی در جویبار فکر می‌کند، اما با هر آنچه که بتوانید از ذهنت تصور کنی تفاوت دارد چون با تصورات ذهنی نمیتوان فهمید این جریان چیست این قدرت ماوراء تفکر، درک، عقیده استاد، علوم اسراری، یا حقایق مکشوف است به گدار این قدرت را برای تو تعریف کنم این همان قدرت باستانی است که انسان زمانی دارا بود در آن دورانی که زمین توسط قولهای معنوی مسکون بود این جویبار یا جریان عظیم خدا از درون آن کسانی که واقعا وجودشان در ذات بالاترین مقام الهی منحل گشته باشد جریان دارد این یک تماس عملی با بالاترین سرچشمه جریان آگاهی خداوند است که از درون آن ذات بیرون می ریزد نرزم فقط یک استاد حق می تواند این نیرو را درون فرد بیدار کرده و آن را به هر کسی که خودش را وقت حقیقت نموده است اعطا نماید او می تواند از تمام پیروانش یا از هر کدامشان که بخواهد مجرایی برای عبور این قدرت بسازد یکی یا همه برای استاد حق تفاوت چندانی ندارد اکنون وقتی به تو میگویم که این قدرت در درون تو هست و پیشنهاد هر کمک امکان را به تو میکنم، کنم کلمات مرا آسان نگیر من چون این کلماتی را به عده چندانی ارزانی نمیکنم، زیرا به خوبی شناخته شده است که با این قدرت چه خواهند کرد اگر به خاطر بیاودی هنگامی که در کلبه کوچک من در کوه های هندوکش نشسته بودی من این کلمات را به تو گفتم دیگر نباید از چیزی حراسان باشی زیرا من همیشه با تو هستم و قدرت حق همواره درون تو کار است اکنون داری آغاز می به فهمیدن معنی واقعی آن عبارت زیرا هنگامی که من چون این قدرتی را به هر یک از مریدان خود عطا کنم به آنها بالاترین قدرت معنوی فهم و قوه تبعیز درست را ارزانی داشتم توجه کن چه میگویم همه ی که این قدرت را از دست من دریافت میکنند معمولا در ابتدا درون خودشان کشمکش بزرگی دارند بین لحظه بین لحظه ای که این قدرت عملا داده میشود و زمانی که جسم و ذهن مرید هم عملاً آمادگی دریافت و استفاده از این قدرت را به عنوان یک کانال به دست می‌آورند، فاصله‌ای وجود دارد. اگر من وقت داشته باشم، همانطور که در آشرام خودم آموزش می دهم، به تدریج مهیا می شود تا این قدرت بتواند درونش کار کنند. با روش تدریجی و عادت کردن به شرایطی که اندک اندک دشوارتر می شوند، یک فرد حتی می خود را طوری پرورش دهد که از شکه های الکتریکی با ولتاژ و قدرت زیاد هم صدمه نبیند اما در مورد تو وقت بسیار کوتاه بود و من میبایستی با سرعت تو را آماده میکردم انواع مشکلات درون تو رها شدند در ظاهر تو با هر چیز و هر کسی می میجنگیدی و معمولا بسیار زود رنج بودی دو چار افزردگی میگشتی و خودباوری کافی نداشتی این تنها یک برهه زمانی بود که قدرت خدایی داشت کالبد تو را از تمام محدودیت ها تثیر می میکرد تا آن را به عنوان یک کانال برای استفاده کار استاد مهیا نماید اکنون میرسیم به اینکه قدرت معنوی حقیقتا چیست این قدرت بالاترین قدرتی است که درون چلا فعال می شود تا در به انجام رسانیدن علت وجودی استاد خدمت کند این قدرت از جانب استادی سرچشمه می گیرد که از چلا استفاده می کند تا به هر دلیلی معمولیت معنوی خود را در طبقی زمینی تحقق بخشد مرید خود را کاملا به استاد تسلیم می کند و خودش را در خدمت به علیت او وقف می نماید دیگر به خود تعلق ندارد بلکه اکنون دیگر برای یک علت کیهانی کار می کند او آن کسی است که من او را یک همکار آگاه کیهانی خطاب می کنم. او همیشه آماده برای خطاب استاد است گرچه گاهی خود آگاهانه نمی داند چه می کند. یا به چه دلیل اعمال معینی را در زندگیش به جا می جهان او گاهی وارونه و معکوس به نظر می آید و بسیاری از کارهایی که انجام می دهد برایش بیمعنی جلوه می کنند اجازه بده مختصرا به توضیح این بپردازم که قدرت هستی از دریچه طبیعت علمی از چه تشکیل شده است این روندی است که از طریق آن قدرت معنوی در حال پیشروی و جریان است. همیشه از وضعیت سکون به سوی فعالیت و بلعکس. این یک روند دائمی و لاینقطع است که همواره در حال توسعه و گسترش می باشد. و در این کیهان، کیهان مادی، می توانیم در کلیه مراتب شاهد حضور آن باشیم که در تمامی جهات گسترده شده است. اگر بخواهم از دیدگاه طبقه خاکی آن را توضیح دهم فهم آن آسانتر خواهد بود. بهتر است از اتر شروع کنیم باژ ای که توسط دانشمندان به منظور توضیح مبانی مشاهده فعالیتی استاضراح شد که در همه چیز نفوذ می کند هم در ابعاد فضا هم در اجسام جامد حضور دارد و با سهولت یکسان از میان همه آنان عبور می کند بعضی ها اشتباهان آن را خدا می پندارند. این در واقع ماده تدویر شده است که اغلب نیروی مثبت نامیده می شود در حالی که در قالب ماده نیروی منفی است و پس از انحلال دوباره به صورت اثر باز می گردد. به منظور فهم روشن‌تر از روند قدرت فلکی بهتر است از اتر آغاز کنیم قماش خام ماده یا آن ذرات مجزا در ذرافتی بینهایت دیگر تجزیه به ریستر از آن امکان پدیر نیست این سیال ابتدا به صورت اتم متجلی می شود که خود به اجزایی به نام نوترون، الکترون و پروتون قابل تجزیه می باشد این ذرات تمامی فضای کائنات را انباشتند فضایی که ما آن را آسمان، افق، فضا، خلاء یا بسیاری نامهای دیگر می که بیانگر هیچی یا عدم حضور اشیا است. این ذرات اتری جوهر قدرت اک می باشد آنجریان اصلی خالصی که از سرچشمه خدایی در بالاترین طبقات جهانهای فلکی به بیرون جاری است اکنون به به توضیح اصول اساسی آفرینش هنگامی که افکاری پر قدرت از ذهنت عبور می کنند، چشم دواری مانند گرداب درون این سیاله ایتری ایجاد می کنند. شاید از محدوده ی شخص تو هم فراتر ردند اگر این روند به واسطه وجودهایی برتر در جهانهای بالاتر و به حکم آفریدگاران کیهان صادر شود، ما عملا خواهیم توانست روند ایجاد این صحابیهای دوار غلاسها را در آسمان نظاره کنیم که میچرخند و به روی خودشان دور میزنند مجتمعاتی را در هم فشرده ساخته و در مراکزی بیشمار دوده های ماده را شکل می‌بخشند. در تمام لحظات با استفاده از همین روند آفرینش کیهانهای جدیدی در حال تکوین می‌باشند. به این ترتیب اندکی آشنایی با روش های آفرینش در جهان هستی پیدا کردیم. به خاطر داشته باش که خدا فقط در قالب تمامیت و کل معنی دارد. به همین علت نمی‌توان بخشی از آن را جدا کرده و مورد بحث قرار داد. و تمامیت خودش در قالب کلام می گنجد قدرت معنوی آفرینش این صحابی گرداب مانند را درون فرد آغاز می کند سپس دامنه ی گردش این صحابی کوچک دوار نیرو به بیرون از حاله آن فرد و به درون فضا تراویش می کند با یک صحابی دیگر برخورد می کند و در آنجا افکار این دو با هم جمع شده یا در هماهنگی یکدیگر را گسترش می‌بخشند یا اثر یکدیگر را تخفیف می‌دهند این اثر توسط پیران نظام وایراگی اک نامیده می‌شود عارفان باستانی و صوفیان که دانشی خطیر برای ما به جا گذاشتند به خوبی این اثر را شناسایی کرده بودند اما امروزه بیشتر این موضوعات در حیطه دانش گنجانده شده و یک عارف دیگر یک انسان فراموش شده است. اک اتم عدلی ماست و از اتم‌های بدوی تشکیل شده است که عمدتا هیدروژن هستند و دائماً در حال نزول از طبقات بالاتر می‌باشند. از جریان معنوی منشعب شده و تماماً از مجرای خورشید و زمین با حرکتی دوار و مارپیچ عبور می‌کنند. این جویبار معنوی است که از سرچشمه خدائی از می‌گیرد. هنگامی که به تر از دومین بخش اعظم هستی راه می‌یابد، به یک جویبار دوگانه تبدیل می‌گردد. یکی از نوع مثبت و دیگر منفی، یا نیروهای پریت و کل. حرکت مارتیچ ها همیشه در جهت مرکز زمین است. این قدرت اک است که از میان آدمی جاری است و این در صورتی است که آدمی به بیداری رسیده و آن را درون خود پذیرفته باشد از این قدرت خدایی که درونش تعبیر گشته است استفاده نماید بنابراین این درجه کنترل این اثر در آدمی بستگی دارد به میزان فهم و دانش او از مکانیزم آن هرچه دانش او در این زمینه گسترده تر باشد به همان نسبت قابلیت کنترل قدرت الهی برای استفاده در جهت منافع اکیهانی در وی افزایش می استفاده اصلی این قدرت برای رشد منظور شده است. این ما را دوباره به اقدیم دانش رهنمون می شود. و به منظور توضیح آن می باید باز هم به عمق بیشتری از الیت های آنسوری طبیعت وارد شویم. آینشتاین، ادیسون، موزار، باخ، شکسپیر، شوایسر، تاگور و دیگران در مطالعه این مقوله تا اعماق زیادی پیش رفتند. بنا آگاهانه با این قدرت تماس برقرار کرده و از آن بهرهوری بزرگی حاصل نمودند. در واقع هر ای که خدا به او رخصت گام برداشتن روی زمین را ارزانی داشته است از این قدرت خدایی استفاده کرده و به یاری آن وزیفه خیش را در جهت سعود بخشیدن به های بشریت به سوی ارتفاعات معنوی به جا آورده. اکنون به تو میگویم که آنان که چشم دارند که ببینند خواهند دانست که ابرهای عظیم هیدروژن گستره های بیپایان فضا را اشغال کردهاند. اغلب این ابرها در فاصله کوتاهی از سطح زمین قرار دارند و در این ابرها، میدانهای الکترومغناطیسی قرار دارد که به واسطه نیروی افکار پرقدرتی که بر اثر برگذاری دعاهای جمعی در فضا پراکنده می شوند یا به اراده یک ذهن پرقدرت ایجاد شده باشند و یا از جانب مقاماتی در سلسله مراتب معنوی که در حیطه آفرینش عمل می رها گشته شده باشند؟ به خود شکل میگیرند و حرکت مارپیچ را در سیاله اثری موجب میشوند که تأثیری را به نحوی در یکی از نقاط عالم منعکس خواهند ساخت. حتی اگر این افکار آفرینش جهانهای تازه‌ای باشند، علت شروع جنگهای بزرگ دوران با سعادت و نیک ها و سایر های نژاد بشر هم در اثر شدن همین افکار پرقدرت در میدان های الکترومغناطیسی این ابرهای هیدروژنی تحقق میابند آری، این قدرت های فکری یا قدرت ذهن در این طبقه خاکی به گونه ای مستقر شده است که دوران های مدید طول خواهد کشید تا استادان حق بتوانند آلودگی های حاصل از آن را با آموزش معنویت حقیقی به نجات‌های بشر پاکسازی نمایند تو میدانی که قدرت های در گذشته ها موجب انهدام بسیاری از قاره‌ها و قطعات خشکی در زمین گشته است. فعالیت در نیروی اک هم جاذبه و هم میدان الکترومغناطیس در خود به وجود می آورد جریان روبه درون این قماش ازلی جاذبه و حرکت مارپیچی که باعث این جریان می شود یک میدان الکترومغناطیس می باشد اکنون این را به تو می گویم. از آنجا که ما در طبقه زمینی درگیر قدرت فلکی می باشیم، بهتر است در مورد تحتانی ترین صورت آن بیاندیشیم این صرفاً به خاطر فهم بهتر مطلب می باشد. همه معلمین به اصطلاح حقیقت سخن از عشق و نفرت می بویند. آنان تنها طبیعت اخلاقی خدا را آموزش می دهند. قدرت آنچنان فراتر از این هاست که یک آدم معمولی نمی تواند چندانی از آن برگیرد. به بکارگیری آن از طریق انسان که به طور دائم در کنترل آگاهانه آن می باشد از این قرار است قدرت توسط استاد درون او تعبیه می گردد و همواره علت خدایی را به مرحله ظهور میرساند و همیشه در مقیاس کیهانی عمل میکند نه در جهت مقاصد فرد ریسمان های نور یا عشق زیرا عشق در جهان های ماورا واقعا نور است و نفرت است. میان ماهانتا و چلایش بسته شدهاند و هر کجا که مرید می و هر چه می توسط استاد تعین می بنابر این چلا طرفا یک مجراست که نور سفیر از طریقش در سراسر کیخان منتشر می شود قدرت با حرکتی مارپیچ و در جهت اغربه های ساعت از میان و درون مرید و هر آنچه چه او لمس می کند چه فیزیکی، چه ذهنی و چه معنوی جاری می شود این نیروی آفریننده است که به درون آدمی می رشد و توسعه را ظهور می و نور و ساد را در هر آنچه چه که لمس می کند باقی می گذارد این همانند عمل کردن به واسطه یک میدان الکترومغناطیسی است که اگر به قدر کافی و با قدرت باشد به نیروی آفرینش اجازه عمل می دهد. اما هنگامی که تضعیف شده باشد کل یا نیروی منفی بر آن حاکم می شود که جهت حریصت میدانش در خلاف عقربه های ساعت است و باعث انهدام می گردد و اما کالبد آدمی در درجه اول از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است و به این ترتیب به عنوان یک میدان الکترومغناطیسی مورد ملاحظه قرار می دیرد. خصوصا اگر بتوانید حملوان خود را از میان چشم معنوی خود بنگرید شکل این میدان مغناطیسی برایتان به وضوح بیشتری در خواهد آمد بنابراین این قدرت میتواند به فوریت از طریق فرد عمل کند زیرا او خود از قماش همان میدان جاذبه میباشد البته این در صورتی است که استاد مجرایی درون مرید خود باز کرده باشد که قدرت بتواند از طریقش به طور کامل جریانی یابد اکنون اگر این قدرت به تو داده شده و تو نحوه استفاده از آن را کشف کنی در کارگیری آن استاد شوی و معمای اسرار نهایی کل آفرینش و نیروی ازلی را که موجب آفرینش می شود کشف کنی قادر خواهی بود با این قدرت هر چه می خواهی انجام دهی. با دانستن این که چگونه موجب آفرینش شوی می توانی به جاودانگی برسی یا در وضعیت دائم حیات به فرزی این وضعیت را به سربردن در فیض الهی مینامند این را به دقت به خاطر بسپار، نه خدا بودن نه با خدا یکی بودن بلکه به سربردن در فیض و برکت خدا آره میان این دو تفاوت زیادی هست البته مشاجراتی بر سر این مقوله وجود دارد ولیکن به محض اینکه خودت این گام را برداری تفاوت آن را خواهی دانست ودانتیستها ها این وضعیت را آگاهی، بودن و برکت مطلق می نامند. یک چون این وضعیت وضعیتی نتیجه به گرفتن کنترل کامل قدرت کیهانی است. در جهان های فلکی معدودی توانستند این امتیاز را به دست بیاورند. اما بسیاری به تو خواهند گفت که به این وضعیت خداگونه دست یافته و به فراسوی آن رفتند این اسحارا چیزی جز مبالغه نیستند و اینها تنها وانمود کنندگانند. در اینجا اجازه بده اجمالا گوشزد کنم که قدرت اراده در زندگی توان با قدرت معنوی یک لازمه است. اراده کردن قدرت به درون زندگی است. برای استفاده علت خدایی درست است. اراده کردن بر آگاهی فلکی و نگاه داشتن آن اجباری است. حتما این کار را بکن، ولیکن فقط در صورتی که استاد ناظر بر اعمالت باشد. مضافاً اینکه رشد یعنی حیات، چون یکی بی دیگری وجود ندارد. ولیکن رشد کردن در قالب شکل‌هایی که از ماده سنگین‌تر ساخته شده اند به همان نسبت دشوارتر است. در حیات پرتراکمی همچون حیات معدنی، رسیدن به اشکال آگاهی بالاتر دشوارتر و کندتر میباشد ما می توانیم به رازهای عمیقی که ماوراء تفکر اقلانی آدمی قرار دارند وارد شویم لذا می باید این را فهم کرده باشید که علم و مذهب انشعاباتی هستند که به یکدیگر مرتبط میباشند نتیجه هر تلاشی که ما می توانیم اینجا در این جهان خاکی مشاهده کنیم از همین دو پدیده تأثیر گرفته است حالا اگر می چه اتفاقی می افتاد اگر تو پیرو به سیستم پرانیک یوگا یا پرانا یوگا بودی هرگز مبادلات به انجام آن نمی نمودی. به اختصار برایت توضیح می دهم در ارتباط با معقوله قدرت و موارد استفاده از آن می باشد انگیختن چاکراها درون تو تنها به بیداری یک جنبش اسیری منجر می شود که موجب به بگردش در آمدن یا حرکت مارپیچ پریت یا نیروی خلاقه درون تو میگردد اما اینها بالاترین شکل‌های آفرینش نیستند چون تو تنها یک قدرت تحتانی را لمس کرده و آن را به کار گرفته ای اگر از سیستم پرانا استفاده کنی در نهایت مجبور خواهی شد تمامی راه تا رسیدن به جات یا نیلوفر هزار برگ را طی کنی و از قدرت اک. بهرگیری و این اغلب سالهای سال طول میکشد بنابراین تو با استفاده از این سیستم تنها میتوانی به برانگیختن پایینترین اشخال قدرت مبادرت کنی کوشش کن یک راه میانبور به سوی خدا برگزینی. چشم به راه نور و گوش به زنگ صوت باش حالا که من تو را به قدرت عک تجهیز نموده ام کوشش اندکی لازم داری تا به این دو جنبه از مقام عظیم الهی، ساتنام دست یابی. و استاد تو را در سفر به طبقات جهانهای درون مشایعت کرده، فهمت را گسترش داده، خرد و حکمت الهی را به تو ازانی خواهد کرد. چرا عمرت را در راه فراگیری تمرینات دشواری تلف کنی که بعدا دریابی راه بسیار آسانتری هم برای رسیدن به آن وجود داشته است؟ در شگفتی که چرا قدرت کل در این طبقه زمینی تا بدین حد از قدرت عشق از این تر است؟ پاسخ آن بسیار ساده است اما نمیخواهم در اینجا درباره آن بحث کنم به هر حال این را به تو میگویم که آنگاه که در فهم خود از نیروی منفی یا نیروی زوال و تجزیه به درجات استادی برسید جاسترین اصرار جهانهای کیهانی خدا را خواهی آموخت. آنگاه و فقط آنگاه است که میتوانی با خدا وحدت حاصل کنی و بیاموزی چگونه در من تا به عوض زندگی کنی تناقض انگیز است. اینطور نیست. اما برای اطلاع تو میگویم که قدرت منفی یا کل موضوعی است که بیش از اندازه بدنام شده است و لازم است روزی جهت اطلاع نجات ها و ارتقاء سطح دانش آنان مورد تصحیح واقع گردد. آیا آن چرا که گفتم نمیفهمی؟ زیاد درگیر افکارت در خصوص مطالبی که در اینجا گفتم مباش زیرا همانطور که در ابتدا گفتم این قدرت به تو داده شده و همواره همراه تو در بالای سرت جاری است به گفته های من ایمان داشته باش روزی فرا می رسد که خواهی توانست آنچه را به تو گفتم بفهمی، بدانی و هضم کنی برای امشب کافیست شب بخیر